خب، عرض کنم که ما یه مقداری صحبات مقدماتی رو بکنیم ما یه تجربه یه هفهشت عجلسهی کلاس داریم در در برکلی و اونجا دوستانی که آمده بودن متاسفانه قواشون در یه سر ممکنه یعنی تا وقتی یقینه یارش خاصل نشده که این کسیست که میتونه از او دستگیری کنه زیر بار نباید بره. ولی وقتی رفت، اگر رفت و اگر خواست از پیری که از او دستگیری کنه دیگه جای چون و چرا دیگه نیست و باید بطیه سر کشم مرا در منزل جانان چه امن ایش چون هردم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها این مسئله ناپایداری دنیا یکی از اون مسائل است که ما همیشه یادمون میره و حال که همیشه باید به یادمون باشه ما اینجا نایمدیم برامون بودن و به هر حال یه روزی باید بریم اگر صد سال مانی و یکی روز بباید رفت از این کافت دل افروز خب این واقعیتی که اصلا حرف درش نیست هیچ حالا از این چه نتیجه میخوام بگیریم بعضی‌ها گفتن که نه خوب تو که می‌دونی می‌میری باره قبرتو بکن و هم پام این شروع کن به نواز خوندن روز روزی تا بترکی این درستیست آدم تا زنده هست باید زندگی مثل زنده ها ها اساس قضیه این است که مهر این دنیا رو در دلش نباد بشته از آمد کارش خوشحال نشه از برگشت کارش غمگین نشه برای این فردوسی رو آقا بخونی، کار جمشید که تمام میشه که کی بیشتر از این جمشید تو تخت پادشایی نشه میخوام ببینم بعد از 700 سال پادشاهی چه بهرهی جز رنج نصیب شد آخر سرم گرفتن به خاری خار بعد از 100 سال متواری بودن در کوه و بیابون گرفتن با عره دونست پش کردن این دنیاست وقتی که رو میاره بهت تو در اون وقتی که خوشحال میشی که به به دیگه الان دیگه دیگه بالاترین به اصطلاح با محبت و مهر رو فلک به من کرده میگه همون ساعت یکی نغزبازی برون آورد که که که اندخ اندر دردات خون آورد الان یادم نیست این درسته و اساس مطلب اینه حتی ابو سعید میگه میگه مرد آن است که بره تو بازارم بنشینه صبح تا شب با معامل... معامله کنه با مردم بگه و بشنو کار کنه ولی مهر دنیا در دلش نباشه و برای یعنی بی دنیا رو آدم وقتی در هر لحظه دونه است اون وقت دیگه بدمنصب نمیشه که تا اومدن گفتن که آقا شما مثلا رئیس بایگانی اینجا هستی دیگه نشی اصلا چه جهل و تاریش و باید بدونه که فردام دومش میگیرم میذنم پیک. دیگه از از هشمت پادشاهای گذشته ایران که بالاتر دیگه بلافاصله این جلو چشم ماست. خب وقتی یه چند کسی به یه چند حالی میافته دیگه واقعا به این دنیا میشه اعتماد کرد. مرا در منزل جانان چه امن عیش. یعنی میگن استفهام انکاری یعنی در زبان فارسی دوست ندارن بگن که من امن ندارم دوست ندارن وقتی شاگرد دیر میاد بگن که آه وقت اومدن نیست بعض این زودتر اینجور نمیگن اینو به صورت سوال میگن میگن حالا وقت اومدنه؟ این معنیش حالا اگر ام بخوای جمله رو ادام بدی جواب اون شاگرد اینست که نخیلی حالا وقت اومدن نیست بعد استاد میگه خیلی خوب پس چرا تو حالا اومدی بعد او جواب میده که مثلا اتوبوس پیدا نکردم یا عذری میاره همه این مطالب خلاصه میکنم جمله به صورت سوال میگه حالا وقت اومدنه اونم میگه ببخشید اتوبوس رو اصلاً پیدا نشد اینوشون میگن استفهام انکاری در حقیقت جمله منفی است ولی به جای جمله منفی به صورت جمله رو به صورت استفهامی بیان میکنه در منزل جانان چه امنه اش؟ یعنی در منزل جانان برای من را به معنی برای است مرا یعنی برای من را به معنی برای است اینجا مفعول سریح نیست هیچ حالا راهارم میگیم یه وقتی گیه انشالله مرا در منزل جانان چه امنه چون هر دم جرس فریاد میدارد که بر محمل ها اه... قافله ها وقتی میومدن میرفتن موقع بلند شدن و باربستن و گرفتاری هم داشتن دیگه از وقتی از خواب بیدار تا وقتی را بیفتن چاید دو ساعت مثلا طول میشت رخت خواب شما جمع کنن، ظرفاشما جمع کنن، توشه بردارن، آب خورتنگ خوراکی بردارن چه بکنن چه بکنن؟ طول میکشید. و در این مدت اینا با وسائلی چون مردم خسته بودن دیگه مقداری پیاده سوارش هم که روی اون شطر و قاطر و بدبختی بدتر از پیاده اینا میخوابیدن گاهی خواب میموندن که قصه های بسیار هست میدونید که مسافران که گم شدن و غافله رفته چون یکی ایکی که نمیتونستن چیز بکنن میگه من در اینجا زندگی عش یعنی زندگی اصلا ایش معیشت از همین ایش یعنی زندگی خوش خوشگوزرانی نیست اشرت خوش خوشگوزرانی ایش یعنی زندگی میگه من زندگی امنی در اینجا ندارم درست مثل مسافر مسافر خیلی اون قصه سعدی هست تو گلستون که میگه که شبید در بیابون پای رفتنم نمونده بود و گرفتم خوابیدم اما اونجا دو زیاد و دو, دو اینا یکی گفتش که اگر رفتی، جان به سلامت بردی، و اگر خفتی، مردی مردی تمام خواب نوشین با انداد رهیل، باز دارد پیادراز صدیب عرض کنم که توی چیز، این زندگی نمیتونه بکنه که یعنی به میل خوش نمیتونه به خواب موسیقی، باید بلند باید بار رو بنده، باید باید باید اون بساتی که داره میگه من تو این دنیا همینجورم هر لحظه جرس فریاد میکنه که محمل ها رو ببندید محمل در حقیقت اسم آلاته یعنی وسیله همله و هر هم با احسام مختلف زاشته کجابه بوده این امان پالکی بوده، اماری بوده، تخت روان بوده همه اینا وسائلی بوده که حد اکثر در حقیقت استفاده رو از حیوانات بارکش بکنن مثلا دو نفر به دو طرف یا جوری باشی که راحت باشی، اینا رو مه... یا اگر که قرار بودی که دیدید گاهی توی این شمایل‌ها و توی این عکس‌های مقدس و تابل‌های نرک باشی، اینا هم هست، یه چیزایی که می‌ذارن توش مثل یک کیوسکی، مثل یک که پرده‌ایی هم داره، دریداره، چیزی بسیار ناراحت مزخرفیست البته، ولی خب دیگه همین که بودی مرا در منزل جانان، چم جانان اولش جان چیه؟ جان آنه یعنی، <تصفح> <تصفح> چه جور علفانونیه اصلا؟ اینو بفرمایید؟ جان... جان. نه جانان یعنی من عشوق جان نیست <تصفح> اه هفت جور الفنون داریم آتو فارسی، یکیش الفنون جمع اون شیشه دیگه شایش گمه بنویسینین، اون یکی هفتمی هم بنویسین اولیش که 90 در سطح قضیه هست، جمع مثل درخ درخت، درخت کن دومیش الفنون فایلی، اینا به ترتیب کسرت استعمال دارن میگم الفنون فایلی مثل گریان خندان که با ریشه فل یعنی با فل اهم ساخته میشه خندیدن، خند، خندان گریستن، گریه، گریان رفتن، رو، روان این هم الفانون فایلی فایلی الفانون زمانه مثل بامدادان سهرگاهان شامگاهان و همسار. الفانون مکانه مثل گیلان یعنی سرزمین گیل ها مثل دیلمان یعنی سرزمین دیلم ها مثل ایران یعنی سرزمین آریا ها توران یعنی سرزمین توران این هم الفانون مکانه یکی الفانون نسبت، این جانان الفانون نسبت یعنی چیزی که با جان آدم پیمند داره نمونه دیگرش پهلوان یعنی مال قبیله پهله قبیله پهله هم قبیله پارت چون پارت ها مردم شجاع و تیراندازی بودن پهلوان گفتن یعنی این مال اون قبیله است. پهلو، پهلوان الفانون نسبت درشه اون مکانه اون مکانه, مکانه. پهلاو جا نیست که قبیله است یا هم بله بله یعنی بله. پارتی مهمين. گیلان اتبعی. یعنی سرزمین گیل ها ولی پهلوان دیگه سرزمین پهلاو و پارت هر دوش یعنی هم قبیله عشقانی و چون جنگی و تیرانداز بودن بعد تمام این مزامین بعدی روی اون است بناشده تیرانداز و سرواز و نمرجه بر اون اساس خب شد در جم و فاعلی و زمان و هلخانون جمع، هلخانون فائدی، هلخانون زمان، هلخانون مکان، هلخانون نسبت اون دانه، هلخانون نیست ارونستان ارمنستانم آن نراخته، هستانه قند و دان، نه عزیزم، قند و دان، این قاعده است کلمه که این وسط و با مجبور شویش دیگه باز قند و دان کلمه حرف آخر کلمه قند و حرف اول کلمه دان چون دوتاش یکیه یکشه میندازن میشه قندان ولی نمکدان میشه نمکدان دیگه گلدان به همثالش ارض کنم که شیشومی علفانون است. اسم مستر میسازن باش مثل عقد کنان مثل شیرینی خوران مثل هنابندان و عله بران مال خانوم هاست البته مال آقاها خیلی اسباب خجالت هست سورا <تصفيق> این هم علفانون نسبت علفانون مستری ببخشید و آخری علفانون بنووته اولا نووت هم نیمسیم بنووت از کلمه ابنه یعنی پدر و فرزندی انگلیسیش هم میشه افلییشن برای کسانی که انگلیسیشون چاقتره این الفنون بنووت در فارسی نیست تو گفت تو چرا داری این الفنون مال است و در فارسی نیامده منطقه بعضی اسمها با این الفنون همونجور منتقل شده به فارسی مثل اردشیر بابکان یعنی اردشیر پسر بابک مزدک بامدادان یعنی مزداک پسر بامداد خسرو قبادان خسرو پسر قباد ولی در فارسی ما اینو نمی سازیم حسن تقیان ما خیلی ساده اضافه می کنیم حسن تقیی یعنی این می‌گیم اضافه بنوفت یعنی اصلا به سر طقیق مسعود سعد سلمان یعنی مسعود به سر سعد، به سر سلمان خب، ارز کنم که مرا در منزل جانان بس، الفنون شد، الفنون نسبت مرا در منزل جانان چمنه ایش چون هردم جرس پریاد می‌دارد که بر بندید، فهم الله شب تاریک و بیم موج و گرداوی چون این ها کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها باز استفهام انکاری است یعنی سبکباران ساحل ها هرگز حال ما رو نمیدون اینجا دانستن بنایه فهمیدن درک کردن. و کجا هم معمولاً قید استفهام برای مکان چون تمام قیدهای استفهام علاوه بر معنی استفهام یه معنی دیگه هم داره کی قید استفهام برای زمان کو قید استفهام برای پرسش اینکه که مجهول جا کجا باز برای مکانه چند برای مقداره چون برای کیفیت چه برای چیزه که برای شخص همه اینا قید استفهامه ولی هر کدوم که منی دیگه همراه شه بنابراین اگر ازتون پرسیدن که این قید استفهام برای چی جواب این هست که برای شخص یا برای شیه یا برای مرداره کجا مال مکانه ولی اینجا به جای که آمده یعنی که کلمه کجا در زمین منیه که زیاد میاد در شاهنامه فردوسی خیلی میاد که کجا منیه که یکی پیر بود نامش آزاب سر که با احمد سهل بودی به مرب کجا نامه خسروان داشت دل پیرو و بخت جوان داشت یعنی که؟ با. ارز کنم که کجا دانم حال ما، ثبت باران، ساخلان این راجب عشق که داشتم میگفتم یک تمثیل فوق العاد زیبایی در ویسورامین فخردین گرگانی کتاب هزار سال پیش هست من متاسفانه یادم نیست ولی میگه مثال عشق خوبان همچون دریاز میگه عشق عشق مثل دریاست. میتونی بری توش هر بخوای میتونی بری جلو هم وقتی بخوای برگردی دیگه پر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها خیلی زیبایی است من ندارم اینجا بی سرامینو رو جو کنم دوستانی که دارن ببینن مثال عشق خوبان همچون دریاز در, در همون قصه, قصه های آشغانه ویسترامین همون اوایلش در شرح عشقبازی ویسترامین که یه تمثیل بسیار, بسیار بسیار قشنگ فوق العاده است بعد بله. شب تاریک و بیم موج گرداب گردابی چنین هایل گرداب میبینید که از یک صفت و یک اسم ساخته شده و چیزش می دونید البته آب که گرد نمیشه مسعود اون وقتی که یه, یه حفره ای سوراخی در زمین باز بشه که آب رو بکشه بعد این آب میچرخه و میره تو و اگر کسی اونجا بیفته گرفتاری پیدا میشه همه خود خودکامی به بدنامی کشید آری این آری درسته و آخر تو نسخه درست نیست برای که این به دنبالش عذب میشه اول میگه که کار من از خودکامی خودکام یعنی مستبد کسی که استبداد رأی داره به رأی خودش خودکام به کام خودش همه کارم از خودکامی به بدنامی کشید نام علاوه بر اسم به معنی شهرت نیکو هم هست زده ننگ نام به من بخی میگن که از صاحب نامه و خب همه صاحب نامه ولی میگن صاحب نامه یا نامداره یا به نامه یعنی معروفه و مشهوره و شعرت نیکو لانکه اگر ننگه ننگ هم شعرته ولی این که میگه بدنامی یعنی ننگ در حقیقت همه کار خود هم خودکامی به بدنامی کشی بعد میگه بله رازی که ازش محفل ها بسازن که دیگه راز نیست و عشق این گرفتاری رو داره خدا رحمت کنه مرحوم و استاد ما رو همیشه این بیت رو میخوندن بیت خیلی خیلی معتوری هم نیست ولی قشنگه میفرمودن که از پریدن های رنگ و از تپیدن های دل عاشق بیچاره هر جا هست رسوام میشه. ارز کنم که این همینه میگه که به من گفتند دنبال عشق نرو گوش نکردم رفتم و رس باش. اصل مطلب اینه اشاره به عشق همه کارم خودکا، کام یه چی؟ بدنامیه چی؟ مطلب اینجا هست بحث در باره عشق میگه به من گفتن نرو سراغ عشق رس با میشی گوش نکردم رفتم و عشق قابل پوشیدن که نیست گفت عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری است حالا آره این داستان بر سر بازارم مطلب جالبی داره که بعد خدمتتون میگم حالا فعلا فرصت جو ندارم می‌ذارم خسته حالا بعد کمی نفس بکشم تا بعد از قام نهان کی ماندان رازی سازن محفل ها یک بیت عربی هست بیت ساده‌ای بی هم هست میگه کل العلم ليس في القرطاس زا یعنی زاع هر علمی که در کاغذ نیاد زایع واضی مثلا داریم که العلم سیدن بالکتابه تو قید کل علم ليس في القرطاس کلو جا و زل الاسنینش شا هر سری که از دو نفر تجاوز کرد نفر ثبان پیزه که اون دیگه راز نیز خب، سر عشق هم که هزار جهت بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش سرم که نجوشم رازی که ازش محفل ها بسازن حالا این محفل ها رو من اونس که همینجا بد بگم براتون سابقه ما این اینکه داستانی است که در هر سر بازاری هست یا که حافظ میگه میگه راز سربسته ما بین که به دستان گفتن هر زمان با دفونه بر سر بازار دیگه <تصفيق> یعنی چی دفونه یعنی چی دفونه از زلفونو میدونه چی <تصفيق> <تصفيق> دفونه کجا چرا هزی بود این به دفنه‌ای گفتن؟ سر بازاش تو گفتن؟ <تصفيق> می‌بینید که این چیزی به این سادگی همچنین اون سادگی هم که خیال می‌کنه آدم نیست ارز کنم که اولا گفتن اینجا به معنی آواز خوندن نه به معنی حرف زدن سعدی میگه شب ای شم و گوینده ای زیبا ندارم از دو جهان غیر از این تمنام ظاهرا در احد صدی گوینده رادیو تلویزیون که نبوده بنابراین گوینده معنی آواز خون حافظ هم میفرماید که تو همین غزله ردیف الف ساقی به نور باده برافروز روز جام ما مطرب بگو کاما که کار جهان شد به کام بگو یعنی آواز بخون برای اینکه ای مطرب بگو که کار جهان شد به ما میپرسن خدا نکرد من خاج حافظ خودش لال بوده که بگه کار جهان به کام ما بود که مطرب می‌گه تو بگو مطرب بزن بخون مطرب بگو که کار جهان شد گفتن یعنی آواز خوندن این اوله که میگه راز سربسته‌ی ما رو با آواز خب آواز که اون دفونه هم میاد درست دوست دار آواز که بیاد دفونه هم بیاد خیلی خوب تا اینجا شماس منم شدید راز سربسته‌ی خواجی بشارن رو با دفعونه‌ی در سر بازار گفتن خوندن ولی سر بازار چرا؟ با دفنه‌ای چرا؟ سر بازار چرا؟ بعضی از این قرار بوده که در قدیم وقتی که یک کسی با یک کسی دیگه بد بوده البته آدمی که دستش دهنش هنش می‌رسده و سرجان با رئیس محله بوده و رئیس قبیله بوده یه کسی اینجوری بوده بعد اختلاف داشته با اون دشمنشون این میرفت میرفته یه دست مطرب و سازن و زدگی رو میدیده و آواز خونی و یه تصنیفی میساختن در حج اون بابا و آهنگم میذاشتن روش یه دست سازن را میفتادن میرفتن سر بازار که مردم راحت میشه برای اینکه وقتی که آدم همینجوری ساده بیاد به که آقای زورفونون بعد آدم که گوش نمیکنم رایش میکشی میره وقتی وقتی شروع کردن به زدن و आवाज اینا ساز زن میشن مردم وقتی جمع شدن وقتی میگن بله اینجوری این است که تصریفی میساختن و بعد اون طرفم که چیز نمی کرد یعنی بالاخره مقاومت میکرد برای اینکه اینجور نشه یه چند تا لات و پات و چماق دار که از اینا محافظت کنن که نون سازشون بزنن میزدن و میخوندن فوش یالور میدادن بعد میرفتن سر یه بازار دیگه دوره از سر همینا ادامه میدادن تا وقتی که بالاخره کار به سلا بکشه یا مثلا اون طرف هم یه چیزی درستان در حال این وزیم این ادامه داشته تا وقتی که گرام آفون پیش آمد و صحفه کرد در سواحل جنوب سفر هندستون مثل سفر شا عبدالعزین بوده برای عل تیرون لب دریا بودن و کشتی هم مرتب میرفته هندوستان و لنگرم مینداخته اونجا جناب خانی که با اینکه خان بعد بود همین آهنگ و تصنیف اینا رو میداد خواننده استاد زن و زردیوشو رو کشتی می هند اونجا یه صفحه پر می‌کردن مثلا 500 نسخه بو خوشو فضاحت به طرف می آوردن اینا رو پخش می‌کردن تو قهوخونه ها نظری فرد صبح اون طرف میواد بیرون میواد هر قهوخونه صدا می‌کرد این قصه صفحه گذاشتن، باز واسه من صفحه گذاشتی صفحه آهنگ موسیقیه و تصنیف این که چیز بدی نیست. صفحه گذاشتن معنی بدگویی و پشت سر کسی بد گفتن اینه. و این دنباله تکامل یافته همون قصه سر سربازاره. و این که سعدی هم میگه عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری، یعنی سر بازار چرا؟ کسی رو که میخواستن رسوا کنن وضعش رو که این مردی که این مردی که دوزه این مردی که پول مردم خوردن خورده نم. چه کرده چه کرده می آوردن و اینا با دفونه سر بازار با ساز و زرب می و مردم چیز کن برحال نهان که ایماندان رازی که از او سازند یکی از رازهایی هم که خیلی به خصوص جماعت فضول علاقه مندن این است که کی با کی خوش با حالش که کوشه خاطرش به جمالی که داره چجوریه چجوری نیست که الهمدالله هنوزم, هنوزم بله هنوزم این بهشینی سابقش باب این است که میگه دوستان به من گفتن که عاشق مشو، تون باله این کار نرو، گفتش که. حالا می رویم تا اینان شهر کنم از دست خوب رویان داد عقل رویت من رو که نتوانی عشق رویت هران با. هر ولی بعد بعد از اینکه مبتلا شد دیگه ولی ولی اولشو می داره میگه که من گفتن بهم به که دنبال این کار نرو طریق عشق پره آشوب و فتنه هسته دل بی این که آن که در این راه پاشه تاب ای ماندان رازی که از آن سازن محفل ساختن از راز همینی بود که خدمتتون عرض کردم حضوری گر همین خواهی از او قایب مشروع حافظ مرید صوفی همیشه باید خدا رو در دل داشته باشه همیشه و در اول سلوکش هم حتما باید همیشه شیخ مد نظرش باشه همیشه پیر به عنوان مظهر حق و مظهر هدایت باید در نظرش باشه به محض این که این نقش از نظرش بره این از اون طریقتش از اون راهش منحرف شد. این از که میگه اگر حضور میخواد باید هیچ وقت از او قایب نباشه و باید مترسد وقتت باشی منتظر وقتت باشی تا یه وقت یه یه جلوه ای از روخ محشوق در دل تجلی. ولی وقتی که تا نشستی خر میخری یا خر میتوشی که خبری نیستی همون قضی است این از که میگه که اگر حضور میخوای هیچ وقت نباید از اون قاعد میشی تا یه وقت یه جلوه ای یه چیزی ببین حضوری کرد خواهی، از او، از محشوق، قایب مشوق، حافظ متا ما، تلقمن متا ما، هم یعنی وقتی این ما رو اشکرم یعنی مای زایده این مای نفی، ما مای محسول داریم، مای نفی داریم،, نف داریم دو سه تا مای دیگه هم داریم ما اولای مشبهتون به لیسه داریم ولی این ما اصلا زایده است یعنی فقط برای وزن شعراناده این ما اصلا معنی نداره مطا ما، یعنی متا. مطا متا ما، تلقمن، تحوی. یعنی وقتی که ملاقات کردی کسی رو که دوست داری هوا در عربی درست همون معنی رو داره که عشق در فارس اینی هوای تو یعنی من عاشق شد. هوا اینی هوای تو و ما للعشق من باستی ما مره مثل الهواشای اون علا راست یه هیچ چیزی مثل عشق سر من تا امروز نیومد. به هر حال متا ما من تهوا یعنی وقتی که دیدار کردی ملاقات کردی کسی رو که دوست داری دنیا فرو گذار دنیا رو رد او از کوشتم ولی امید ثباتش چنان که نیست کدام باد بهایی بسید در آفاق که بازدار و روش آافت خذاست خبشید من مجبورم بگم که در کاش برمز بله، سرب کاشمر خراسانی شما من شیراز بدون اینکه مثلا اینا زیلت میدن مال شیراز واقعا خودش سرب کاشمر از بهشت آورده بود بهشت آورده بود و به دست خودش کشته همامل دنیا سرب شیراز یک شیری بود کاشمر یا آمد، نامد برم به زورد یارا بور <تصفيق> حریش سینه و سرب سمنسورین در چین زلفکا مشتی ست هزار بند در بند فکاو، مشتی ست هزار چین در کاش نبوده چنو ترک رو در کاش مر نرسته چنو سرو راستین بودی زباز حرامت و تو سرخیش در دولب گفتی لبش گل است سرشت بانگوین مجهورم بگم، اطلاعا بخوش. خب، سوال چیزی اگه هست، ببخش اینکه یکی دو بتوش درمه شد، چه خواهی که بسرم میزید. برد. استاد، آف چون، حافظ کسانی هست که درباره زیو همیشت صحبت میشه، بعدی مدخل هستن هر چی شعری که البته باقی بیمه شاید نظر معاقی مثل میشه شما، می خواهم نظر شما باشه بشنم. چیزی که شما فرمودین، بعضی قزل سرایی های عاشق، حافظ مثلا به عوض مدیهه، یعنی قزل حدث مدیهه بوده به شکل قزل آمده. بعضی مثلا قزل های ارفانیست که هرچی میگن منظور خداست و حقیقت بسید. اما چیزی که مواند یک این های به اصطلاح مجازی یا چیزی که تقریقا همه شاعرهای بزرگ اولا من, از که, من نایازم نایازم که هدف مدیهه بوده حافظ برد. راهی پیدا کرده بود شرمت رو بسازه و این مات بعد <تصفح> از خود <رو> بمانه <تصفح> یک، دوبا <میم> که <تصفح> یادتون باشه حافظ در حالتون پنجاه سال شاهدی یک جمعون بیست ساله یه بود در از خودش برسیم بچه خوب نیست. جوان بیست ساله بوده مثلا که پاک داشته در عالم شعر شاعری و مرد هفتاد ساله بوده وقتی از این دنیا رفته شما خودتون که خاجحافظم نیستین و بنده که خاجحافظم نیستم آیا در این روزگار هزار جور فکرمون و ذهنمون و سلیغمونو چیزمون تغییر نکرده که حافظ ما اون ذهن جستجوگر و این میشه غیر از این باشه سریحاً گاهی اشاره به شراب کرده بدون گفتگو سریحاً گاهی اشاره به میه ارفانی کرده باز بدون گفتگو و اینا در دوره های مختلف زندگیش بوده مثل هر آدم دیگری این کار میکنه و کسانی که سعی میکنن از حافظ یه ارخور رسزن که هر جب شکولاتکشی میشده میوردن در خونش جنازه شمینداختن یا <تصح> <تصح> <تصح> به عکس بگن که ایشون اصلاً هیچ ندیده که این شراب هر دوشون حافظ در قالب شخصیت خودشون میریزن چون شعر حافظ درست مثل آب زلال رنگ هر ظرفی رو میتونه بگیره و هر کسی برای اعتقاد خودش شاهد به دست ولی بنده اعتقاد خاصی ندارم اصلا. و فقط اون چرا حافظ گفته سعی میکنم که به کنش برسم گمان هم میکنم که چون پنجاه سال شایر بوده تمام این عوالمون گفت حافظ چه شد در آبشه با دست و نظر با بس تو رو عجب لازم ایام شب آبا پشت در جبونی کرده مثل همه ما بعد هم یواش یواش آبا از آسیا آب افتاده کم کم برد پیری بر سرش شسته به زندگیش پرداخته همین جور،, همین جور که ما زندگی کردیم چرا ما میخوام یا آدم رو فکر کنیم که از آسمون افتاد زمین؟ ممکنه مغزش از آسمان و نخطوانه همین تن ما بود همین واضیگرم داشته خوشم خوش آوازم که بوده همه جو می بردم و قدر می و بر صد بینیشه عالم بوده یا می خونده مرد خوش بوده دیگه قد بلندم بوده ظاهرم بلند بوده برای <تصفيق> اینکه به قد بلند ها خاطر دارید <تصفيق> که به روز واقعه تابوت ماز سرب کنید که می این به داغ بلند بالا تا اینکه پولنگ بود قدری یادم بیار دفعه چون باید به خصوص بیشتر یادت باشه بخشت. از آل بعدی کدومیه چی که ما مطالعه بکنیم آقای این چند نوشتن اینکه هستش یا جانان چه شماری هست نمیاد. این اشتباه نکنم و مبارد این که از کشکر که دیگه تو تو من خیلی سعی نمی با برای اینکه حافظه هم خرابه. و یافه میارم. مطالب ما سال پیشه. سال